از چون که بحثی در طول این در دنیا اسلام، در این و متکلمیم به اصلاح و که به این معنای بقاها مفرق بود به دلالت آیه نبع بر حجیه خبر عرض تر بودن از که این بحث سابقه داره و خیلی از اشکاراتی که الان مطرحه، اینها از سابق مفرق شدنند و که در کتاب اصول متاخره ما ممکنه بعض شکل‌های تقریبش فرماند یک بحث داری به خود ظهور اینجا اکنفاسمون به این بود که آیا دلالت میکنه و جیه خبر هم از که دیزی ها دقائد هستن مخصوصا اشائقه و دیدیاری از اصول نهل سنت که دلالت میکنه یا به مفهوم شرط یا به مفهوم وحث هر دو رو بردن البته بعدشون مفهوم وحث بیشتر فرکی دارد و در مقابل از همون قدیم روی این استدهاب نظر بود اشکال بود مفهوم وحث رو خب از کلمه گرده کسا کلون مفهوم رو حجت نمیدونن و یه دم معطورد که اگه مفهوم حجت باشه مفهوم ورست نیست هم حجت نیست و در خصوصی این آیه مبارکه هم مفهوم شرط و حجت نیستن چون به اصطلاح اصولی قضیه مقصود بود در بیان موضوع و تحبار موضوع یا به تعبیر ما در حقیقت اینجا شرط مجرد یک صورت ظاهر قضیه شرطیه است چون شم قضیه شرطیه تحلیبه و در اینجا تعلیقی نیست مجرد تعمیره تعلیقی در کار نیست اگر گفت این رو زفت بردن با، پا معناش اختنال برده این در اینجا تعلیقی نداره یا به تعلیق دیگر بنده قضیه تعلیق جایی که سلاسی باشه و در این جاها سناییست و از خود این نکته بحث در اینجا آیا اینجا تعلیق هر یا نیست سناییست یا سلاسی اون جهات دیگر بحث در میگرده و اون این که ما موضوع رو چی فرض بکنیم چون اگه میخواد تعلیقی باشه باید موضوعی باشه و دو حالت مثل زید دو حالت داره بیاد پیش شما ناید پی شما این دو حالت داره در اینجا هم موضوع رو باید چی فرض اگه موضوع رو نبع فرض کردیم همینطوره انصافا تعلیق داره چون میگه نبه این کانال جایی بی فاسق هم به طبعی نه خود معنیش این کانال جایی بی دیگه فاسق فلا طبعی و اما و کذالک اون احتمال دوم، و اما اگر موضوع در اینجا فاسق باش نبه فاسق باشه هدف اساسا اینه که نبه فاسق لایتا بیان بیر تعلیقی نداره این اینجا اكو فاصله محدد عنوان 90 فاصله 90. لا یوق لا یوقه ساخت هر بخشی لا یوق بعد یتغیر اگر اینجور شود دین قضیه مفهوم ما ادعا کرد که ظاهرا همینه شبیه این کلام هم آی خویی طرف فرنده بوده که ظاهر کلام همینه البته اگر این آیه که قالب متن هست بر اون آیه دیگرا اول رو میگه که راجبه نظر این و اضافه بر این نکات دیگری هم اضافه کردیم که استدلال کردیم که مجموعه اولا اینجا تعبد ما نگرفتیم امر عقلی گرفتیم و نکاتی رو در این جلد کردیم سه تا بود یکی اینکه خود خبر طبیعتاً طریق اثر طریقیت اثر تعبود در امور طریقیت اثر غیر واجبه بود واضح یک نکته خاصی هم اینه اگر مثلا گفت آقایون در جایی بودن در آف شرک کردن فرست کن دیویس نفتون سب ندیه کیلومتر برن بیرن آب هست این رو عرف ازش نفسیت نیمیترمید و عرف ازش طریقیت از مثلا اگه هزار نفر یک جا بودن لازم نیست هر کدون به پنه هایی 1000 هزار میترم بیان. تو نفر رفتان آمد مثلا آب نیست کافی عرف این طور میترمید این فهمه بحماقرفی در جور موارد طریق صرف در طریق صرف تعبود معنا نداره او سنه ضعیف زعیفی دوبار این که تباییان در اینجا محدود نشده بیه تباییان خاصی میشه اقلالی پس اون حکم اولیش هم یعنی موضوعش هم حکم یعنی وقتی که کیفیت تباییان برا نشد خود حکم همه این حکم است. سوم میشن که انتوسیق و قومن به جهارته که این هم یک نقطه اوغلایی سر و تحریب برن به اوغلایی به نظر ما به این سه نقطه آیه مبارکه اصلا ناظر به حکم تعبودی نیست حالا به حال، حالا کل تردیه یک اشکال راجع به انعقاد و آیه به این نحوی که ما مطرح میکنیم یک اشکال هم به نحوی بوده که مثلا مرمومات خویی و دیگران اون اشغالشون اینجوریه ما رو همه رو با هم محلواً جمعبیور کردیم به اشکال کرد. یک اشکال اینه که نه خود مفهوم رو تنهایی حساب کردن ان و او با من به جهتن رو جوگانه حساب کردن اینجوری اشکغال کردن گفتن اگر محکوم ثابت بشه چه مکوم شهر و چه رو است این ان توصیب او ماع انواده میشه ان و غورن به جههالت اضافه تربیر مرمون هستا بیشون فرمانه امگاری در مختزی آیت بحث میکنی به این در تو تغییر ما مختزی و ماله نگمیم حال تربیر ایشان اینطوریه طوریه از که راست این اشکال از کارم خیلی از اشکالاته به این جهد ما لهمون مدرسه اقلیگرائی و معتدله و شیعه اوائل بغداد. و این جمعه مرموم سید مرتضان. سهل مرزه رعیمالله در از ذریعه همین اشکال رو میکنه بردازه چونم از این اشکال رو از سهل نبرم جدیبه این اشکال قدیم در کتب اصول آمده و مورد بعد قرار بید و اشکال خوب واضحه انتوسی و قومن به جهالته میگن این علم در خبر عرضم وجود داره چون خبر عرضم قطعه مطابقه قطعی با باقیه نیست این انتوسی و قومن به جهالته یعنی شما کاری بکنید که در جهت و عدم علم الهی تو خبر عقل هست واسه این تعلیل شامل خبر اهل هم میشه چون شامل خبر عقل میشه مانع از انعقاد ظهور میشه یعنی اگر این تعلیل نبود ما میفهمیدیم خبر عقل حجت اون تعبد است فقط خبر عقل عادل حجت اون تعبد است وقتی چون گویا انتسی من, من به عادل دیگه نمیشه خبر هر بود باشه چرا چون در خبر هر هم احتمال حساب به جد و عدم واقع هست پس نمیشه تعبود باشه حالا فایده آیه هایی فایده چی فایده فقط لازمه فاصله با, با نیست دیگه مفهوم نداره این تعلیل فقط برای منطقیه دیگه مانع انعقاد ظهور مفهوم میشه یعنی مفهومی برای شما نعرقل نمیشه چون این تعلیل آورنده این خلاصه اشکاریه که اخذ کردم از هزار سال بیشتر است هزار سال خب طبیعتا ممکن است شما طعم خودی مطالبی که گفته شده اشتباهی متذره که یه نیاز بخوندن خوندن نداره یا من خب جهاب داده شده در این مجله ارسم که خودمانم منم برام نبودم اشغالو مجله رو خونم ولی قرار نیاز ندارم مراجعه چون در خلال این اشکال خصوصی متأخر وارد بحث حکومت و انوار حکومت به معنایی رو تعریف حکومت به مقدار مثلا کلمات مرو ماهو کوچیک اینجا صحبت های زیاد میشه که خیلی محصلی نداره ما به مقدار کلمات ایشان چون اصل این تصور محصل روشن نداره ما بعد عرض خونم. مثلا ورود تو این بحث معنای روشن نداره لذا ما به مقداری که بعضی از اصطلاحات در اینجا رخصه شده ننفس معرو و دیگران خداال رویی سعی کردن یه مقدار مسئله رو با یه قواعد جدیدی بررسی بکنن که خب به خود اون کلیاتش خوبه به مصابق خوب و تیفه. حالا تصویر در ما نخنفی بشیاننش اون بحث دیگر است. لام ما یه مقداری فقط اتفاع می به صحبت های استاد در اینجا و یه توضییهات مخصص را عرضز میکنیم، که برای آقاون روشن باشید بعد در نهایت اینه نمیم خیلی طولش بدیم اون نظر نهایی و کیفیت بحث ما معترضیم در قلال بحثاشون اون زرافت های فنی کمتر مراعاد شده موقع دنبال زرافت های فنی و های فنی بحث باشیم این تطریل بحث به جهاتی که رکی به واقعیت نداره خیلی کاشف مسمر سمر نیست حتی اشکال اینه که چون تعلیل آمده ال فوق ال عموم ال ادراک ال... به عموم ال یا یه عبارت معروف دیگه‌ایه که ال, ال... ال... ال... ال... ال... توث و توعی یا توث عام جهت و توعی یک جهت اگه گفت لا ترک نه و و حامل این فعل نه و حامل از جهت اینکه شامل غیر انسان هم میشه چون هر چیزی که تورش بشه از جهت دیگه رومان رو هم تقیید میدن رومان شیری رو شامل نمیشه لذا میگن لذا توست آن هده و توزهی اگه منجه این درسته اصل مطلب اجماله درست این راجع و ارز کردن اشکال قدیمه اشکال جدیدی همیست و لذا از قدیم محل بحث شده آین اصول اهل سنت چیه از قدیم به این مطلب یا اشکال کردن یا جوابه اصلا که یه مقدار جواب علماء خودمون رو یه مقدارم سر سیر تاریخی چیم مقدارم همون راهی که به نظر ما خیلیتر میادن مطلبی و اول توضیح در در عبارات اصولی آمده که این انتوسیق و من به جهالته به نحر اطلته بعضی از این آن محاصر ما هم هم در اصول خودش ایشون فتبین و اصابت قومن این انتسیگو رو مخبول تبین رو که دیگه جمع به یه تعلیل پیدا نمی کنه و ایشون هم عدیب اضافه بر مقامات خودش خب خود. مرد عدیبیست انصافا خیلی معنای عجیبیست به ذهنشون. خب اگر این شد یه تعلیل نیست اینجو. فتبین و اصابت قومن به جهاله یعنی بررسی بکنید که اصابه رو به جهالت میشه فتا تو رو علا ما فعلتم نادمی خیلی بعیده الان انصافا چطورم به زمینش رو کتور کرده بعید یه نقطه دیگری که در اینجا هست در کتب عدوی در اینجا مثل یوبیون الله لکم انتظلو این آیه دیگه هم داریم لا ترفا اصفات فوق صوت نبی علامه قال انتک برو و انتون را تشگه این. یه سنخ آیاتی در قرآن اینجوری آمده علمای عدب ل... به اصطلاح یک لامه علت و لای نافیه در تعبیر گرسند هم علت باشه هم منفی باشه فتر رعیم لعلا تسیبو این لعلا رو خودیم به فرق همزه یعنی ل... لا تسیبو اون لعلا که میبینم لئن لا این که انتس تصيبو در حقیقت یک لامش افتاده که لام علت باشه یک لا طرف نفی هم افتاده تبينا لئن لا تصيب قوم به جهاله برای همین بیشتر در خصوص آمدن بعضی‌هاش هم کلمه کراهت رو در تعبیری رساند فتبينا ان تصيب یعنی کراهت ان تصيب در کتب بعداً نوشته مسیح یعقوب علیهم السلام لکم ان تغلو این در باهان هست اخصاص به اینجا نظره گفتن یا ریان الله لكم خدا باید بکنه شراح یا لعظا تنم من این توضیح رو سابران از کردم این ایکی از صالیف لغت ما از کردیم اینکه لغت یکی امور سیاریه یکی امور زندهیه همجره حرکت داره و تغییر میده این فقط به مفردات نیست مثلا فقط در مدینه در حجاز مدت ها تا آم خوش بود ها شامل قضای تر هم شده سا تا گوش بسه <تصفيق> این لغت طبیعتش اینطوره محدود نمیمونه طبیعت معانی لغتی گاهی هم میشه حیات هم همینطوره از در برآن کریم هر جا که خواسته شده به معنی ازدارار بکار بمره که به افعاله، باب مفاعله بکار بود دیم غیر مزار بلا تو زاردن والدتون به ولده ها باقی مفاعله اما انهان در لغت حده الان از زمان ما مساده هست همون که جاست متعاله هستم در مثلا فصل روزنامه ها متعاله هست کسی مزارد زارد روید یعنی همیگران عبر ببینیم الان باقی افعال بکنم حیعت و عوض کردن یه وقتی حیعت باقی مفاعله بود حالا حیعت باقی افعاله حیعت عوض میشه این طبیعت لغته. این یک جذب لا یک اعتباری که به اصطلاح عوض میشه یکی از راه‌هایی هم که گویا عوض میشه همین تعبیر آیین ادب و دواح ها بیشتر اون هاف معنا رو سعی کردن با لفظ برام بکنند این اینطور نیست که انسان دائما هاف معنا رو در لفظ مثلا یک کتاب با اون حاظا با یک حاظای در تعبیر برای که معناش اینه واسه معناش اون هست اما اون معنی رو با حاضر نمی به بفر باب و این که در لغت عرب آمده این اصطلاح در قرآن مصدف شده و اون استلاح اینجوریه که میاد یک مطلبی رو خداهان متعار بیان میکنه میگه و فرض این میکنه که اگر نشد این در لغت عرب در اون زمان بوده این ای فرض علت بر نشدن شعری در زمان فارسی به بعض اصفر داده شده کربله رو در کربلا تا نیفتی چون حسینن در یه شعری هم اینجا تا نیفتی چون حسین همچون که ماموسین نیفتاد نه که افتاد کربله رو در کربلا تا نیفتی چون حسینن دربلا این نموده شد أيه که ماموسین تو بلا افتاد تو کربله رو تا نیفتی نه همچونه تو ماموسین هم نیفتاد بهاحب کلام اینجوری خبه این شعر ممکنه برای توجیه کلام. اینطوری گفته شده باشه اما این در قرآن یه اصطلاحیه مثلا یبیون لاله خدا بیان میکنه رحمت الکه اون نقطه عدم بیان رو بیان میکنه که اگر بیان الهی نبود انفقر به شما گمراه می شدید گمراهی رو یه اهل بیان یه اهل تعبیر داریم نداریم که کلاهر در تغییر بگیریم یا لالا در تغییر شو مشو یه اهل تعبیر قرآنی است که در اون زمان متعارف بوده بعدها این از اصطلاح خارج شده این متعارف نیست اصطلاح نیست این اصطلاح و این تعارف برداشته شده مثل تانه یا فیچون حسین هم در بلا میونه یعنی علت هست برای اینطور بکنید ما این اگر تبین نکردین اصابه قوم بجان این تعبیر به این مراده نه اینکه که مفعول او باشه و نه اینکه خودش علت باشه در حقیقت علت هست برای نقیه اون فعل قبلی که اگر بیان نمی شد که شبیه لام آقبت یعنی آقبت اگر این بیان الهی نبود شما گمراه موشدید اگر تبیان نباشه انتظل و انتوسی و قومن به جهارت فتوس به هو علاما فرد این شما در معرض گمراهی هست خب پس تا اینجا عرض کردیم ادهی مثل مرحوم سید و در زریعه و اهل سنت معتدله اشکال کردن به دلائط آیه که برفر صدر آیه تمام باشه لکن این تعلیل اختضام میکنه که خبر عادل هم حجت نباشه تا داره این تعلیل با حجیت خبر پس بنابراین مفهوم منعقل نمیشه فقط منطوق آیه مراده به قرآنه تعلیل تعلیل جلوب اینه مفهوم محکوم رو میگید وفیه مرحوم اصداد از خفیه 190 سری کردن این اشکال رو 189 و 90 متعرض بشن و جواب بدن. هم بسی ایشان فرمودن مانع سه تا تقریب داره این وجه اول رو اینجا نوشتن به اصطلاح خودشون وجه اول اشکال به اصطلاح بله وجه دوم اشکال بله. صفحه 197 دارن چون از اولسانی اول و ثانی با خط دروش ندیشتن افراد ممکنه اشتباه رو برن. بله در صفحه 197 اشکال دوم نوشتن اشکال 3-199 نوشتن که این آیه در مورد افتداد بل المصطلح همون نقطهی که ما تو بحث از ما تو بحث اون خیلی ریشه هایی مطلب رو واضح توضیح دادیم که این اشکالات وارد نشه و که مره هاشون رو در آین بفتن متعرض میشیم بعدم در آخر انشاءالا واضح توضیح از ایشون اشکال اول رو به عنوان مانع، عموم تحلیل گرفتن که این مانع از انعقاد اعواد جواب دادن و اولا از کلم ایراد هم بیشتر مال مختبه عقلیگرهای انال ایراد المذکور ایشون می که این جهالت فتسیب و فت اونان به جهاله مراد جهل نیست مراد عدم واقع نیست بلکه مراد سفاهته یعنی شما در خبر فاسد چیز بکنید تبعیم بکنه برای اینکه که اصابه کن به کار سفیحانه نباشه بعدی کسی فاصله شما خبرش قبول کن کار سفیحانه وقتی این طور شد بگیم خبر عادل سفیحانه نیست خبر عادل رو شما قبول بکنیم چون خبر عادل سفیحانه نیست عملی نیست که اقلالیه و لذا مشکل نداره این معنایی صفاحت رو گرفتنیم اینجور که همون اشکال محروف رو امورده. چوریه خو یان که خب میگن این به سر تو رسی بوده آیا اینکه پیغمبر و صحابه اعتماد کردن به قول این شخص سفیهانه بوده خوب این نمیشه یعنی میشه گفت خدا ناظر به این که که کار شما لا رسول الله سفیهانه بوده کارش رو لذا ایشون این اشال معروفیه ایشون سعی کردن جواب انکشار مثلا سوال این فاصله خدالان به ایشون بیان که این فاصله و لذا قبول خبر ایشان به اصطورا صفیه ها پس یک جواب این است که به جهالت یعنی به سفاه جواب دو بقید. که اگر بله مراد از جهالت عدم علم باشه جهر باشه از اینجا آیان باز بحث لطیفی شدن که بحث اشنگی خوبی از این بحث در تابق نبوده سنگیار ننبشتن و جور دیگه نوشتن آقایون ما جور دیگه نوشتن از اینجه حتش باید مقدار میخونم خلاصش اینه که اگر ما قائف شدیم که کلام مفهوم برای خودش منعقل میشه این تعلیل مانع مفهوم نیست بلکه به معنای معنایی مفهوم ها به این معنایی معناه هست سر بشینه که مفهوم کلام اگر آمد و گفت شما حبر عدل رو تعبودن قبول بکنیم شارعه آمد رو خبر آدل رو قبول بکنیم اون وقت مخصوصا روی مبانی مثل آه خویی و مرموم نایمی و تا حدیم مرموم آزیا اینا در حقیقت حجیت خبر تطریم کشف یعنی حدیلی زنی اگر حجت میشن حقیقت حجیتشون تطریم کشف کشف ناقص و شاره کشف تام براد میگه وقت در اینجا در زیر فرمودن شما لا توسی و قومن به جهاله اصابه قوم به جهالت نکنی به جهر نکنی سر آیه چی میگه میگه اگر شما به خبر فاسف عمل کردین اصابه قوم به جهالت اما اگر شما به خبر آذر عمل کردین ایگه اصابه قوم به جهالت نیست اگر مفهوم منعرض بشه این مفهوم حاکمه و مخصوصا از کردن روی موانی کسانی مثل مرحوم آینایمی و آقای خویی اینا خیلی از این از این آیه خوشحالم به قول معروف خیلی به اصطلاح نکته خوبی رو در آیه پیدا کردن و اون این که صدر آیه میگه خبر عد رو قبول بکنی زل آیه میگه اصابه قم به جهر نکنی این معنیش چیه؟ معنیش این که خبر عد اصابه قم به جهر نیست به جهر نیستیه اضافه بر این حالا حکومت داره اضافه بر اینکه حجیت خبر رو روشن میکنه اون نکته فنی رو واقعا چه نانش اشاره کردن اون نکته فنی رو هم روشن میکنه اون نکته فنی چیه اون نکته فنی این است که حجیت خبر به لحاظ تکیه و کش پیدا کنه چون بحث اینه که معنای حجیت چیه در صورتی چی که شأنشون اماریت و تنحیت صرف با این تعبیری که ایشونو او یعنی به اصطلاح در آیه هست روشن میشه که خبر عادل اصولا جهل نیست خبر عادل علم تا چون انتسبه رو منده این که خبر عادل اصولا به صورت جهل نیست از جهل خارج میشه ولذا این مورد خیلی از این جهت به اصطلاح بله مشکلی را هم حل میکنه اضافه برای اینکه بله اگر مفهوم نباشه بله اگر و لذا ما هم قائل به مفهومی و هم قائل هستیم که این مفهوم جنده حکومت داره بعد ایشان این خلاصه این جواب مطلبیشان یعنی وقتی ایشون میاد یه خبر عد رو قبول بکنید از ور بگی شما اصابه قوم به جهالت نکنید یعنی خبر اعنید جهالت نیست جهال نیست این هم ماریان دینایینی آزمه و اصلا که مسئله مسئله تکیم کشم مسئله جبوم اینی که روبه ما یستش کرد واضح اضافه کردن که حلا کن مفهوم حاکیان هر تعلیل اشکالشون اینه که شما دقت بکنید شما میخواید بگیدین حاکم بسیار فنتوسی و اومن به جهارت که بر اردی جهارت موسیقی سننم بعد مشکلتون اینه در خود آیه بردش داره فتوس بهو علاما فهلتون نادمی بگه داریم فتوس بهو علاما فهلتون نادمی این از تحلیل علمی معناه چیه فتوس بهو علاما فهلتون نادمی شما یک تحلیل علمی دادیم گفتین مفهوم معناش این است که خبرم آدل جهل نیست انتصوی با قومن به جهاله جهل نیست سلام بعد فتوس بهو علامه فعلتم چیه من این فتوس چیه کن تحلیل علمی بدیم اگر ما نگاه رو این فتوس بهو علامه توضیح بود علامه فعلتم نادمی این تحریر این میشه که شاره آمد اون اولی رو من تطمیق بکنم بعد این دو رو میرانم من اولی رو الان بارخویه بیانی من بعد این بیان رو خواهم گفت ببینید اینا مخوان اینو رو بگن کسایی که غالی به حکومت هم میگن وقتی متکلم داره صحبت میکنه و مغنن هم هست گفت رو کنید مشبه هم هست مشبه هرچی رو که گفتو به اعتبار و تشریف واقعی واقع نفس الان نه واقع خارجی هرچی که مشرح گفت این این طبیعتش اینطور دیگه مثلاً گفت اگر روز جمعه بود نام بخرد روز جمعه بودن علت وجوب شرائه خوب اگر مهمان آمد نام بخرد آمدنه مهمان علت میشه اگر باران بارید نام بخرد بارش باران علت طبیعت ارتبارات قانونی اینه اون چهره که مغنن صحبت میکنه، این تو به اعتبار واقعیت بیدار می کنه پس در اینجا وقتی ببینیم ما باییم ذهنیت مغرر رو نگاه بکنیم، این مغنن رو مغنن چی میگه اینجا اکن فاسقون به نقعه و تباییم یعنی. ما آمدیم گفتیم که مفهوم ثابته به لحاظه لغت یعنی در ذهنیت این مغنن توی خبر فاسق تباییون هست یه خبر عادل نیست مفهوم معنیش تو خبر عادل تبیین نیست خود او درک اون وقت میاد میگه انتوسیب و قمن به جاهلته بخوای ذهنیت این مقنن رو باز بکنی اونی که در ذهنش بوده این معناش اینه که خبر جاهل جه خبر فاسق جهل خبر عادل جهل نیست معنا این بشه دیگه این تقریر راهه خودینم این تقریر برنامه تخطیق و حکومت به نظرم واچنتر شو یعنی ما همیشه به ان کلام لفل فؤاد و ان ما جو لسان عل اللسان علی ما باید ببینیم اون ذهنیتی که در ذهن محمد بوده چیه دقت میکنید چرا من میگم محمد چون اون تعبود گرفتن چون تعبود گرفتن اون ذهنیت محمد رو باید نگاه بکنیم این این طور میگیم ذهنیت محمد اینه که در خبر فاسق تبیان بشه و اگر مفهوم ثابت باشه و لفظ کافی باشه در خبر عادل نیست بعد علت میاره همون مغنن ان انتصیب و قومن به جهاله این همون مغنن دیگه این لازمش به تصور ما وقتی بخواییم اون واقع محصود مغنن رو بفهمیم یعنی مخواد مغنن بگه که خبر کاسر جهده خبر عادل جه نیست ان تو سیو قومن بوش بج... وا اینطور معنا کنیم این تغییر قشنگتر تغییر رو بود پس اگر ما با همین ذهن این آقا رو باز بکنیم این ذهن این لحظه‌ای که طریق از اون معنای بقول نفسی اون معنای اون ذهنیتی این آقا اینطوره که ان مجموع کلام رو معلل و علت معلل یعنی اینجا فاسه هم فاسه همون به نبین اینا رو با هم نگاه میکنیم میبینیم که انما در ذهنیت این مغنن اینجور بوده خبر الفاسه جهلون و تبین دنبال بیان و ده معناش و در ذهن ایشون بوده که خبر رو آده نیست جهلن خبر عادل نیست لیز جهلن نقطه رو دقیقه پس ما وقتی میخوایی عبارت و معنی بکنیم مفهومن و منطوق، منطقه و مفهومن و تعلیلا این رو از ذهن متکلم در مجموعه این عبارت در میاریم. بنابرای اینکه مفهوم ثابت بشه بگیم ما از آیه مبارکه منطوق و مفهومن و تعلیلا این طور میفهمیم اون در ذهن مقنم بوده این بوده خبر خاصه کسی که شروع خامل میکنه ولی متعرضه از که باشه این جهلو عمل به خبر او جهلا و عمل به خبر عادل علمون خبرشون کردی درست میشه بدون نمی‌شید چه دو نوع جهله بدون, جهل. بدون تبیین جهل با تمرینم که علم دیگه خوب علم بشه روشن شد این روشن شد خاص بنابراین ما این طور میفهمیم که این مقنن داره یک معیار رو میگه خبرال فاسق جهلان و خبرال عادل علمون این که گفت عادل علمون میشه این نه یعنی جهل نادانی تبیان که کرده علم میکنه نه این که انخلاب خودش نادانی چیزی نیست که عمل جرد. این چون چیزی نیست، عدمه. تغییر کردن وجود اون خوبشاله، چه رو. دیگری که اینجا شده اینه که خوبه، این مطلبی که شما میگیم خوبه. برای اینکه بس بخواد مفهوم حاکم باشه بر به اصطلاح علت. البته نکته که در اینجا هست اینه که این علت ولو کلمه جهل رو عبور انتصیب و قومن به جهاله درست دکتا این جهل رو بعد نتیجه این جهل و منتها علیه و قایدی و به اصلاح اون جهلی که این جهل بعد به اون راخل میشه گفته به بهو علاما فرطم نادمین ببینید اگر اکتفا کرده بود به همون جهل و علم ممکن بود حرف شما داشتیم وقتی آمرگو فتوس به هواء علاما فعلتوم نازمیم یعنی فتوس به علاما فعلتوم نازمیم. این وقت تحلیل قانونی بکنیم تحلیل اصولی بکنیم. در تحلیل اصولی در اونجا شما می‌دونید جه در مقابل ایرک خلیفه سلام. اما وقتی آن دیگه این ندر مال چیه فتوس به هواء علاما فعلتوم نازمیم مال چیه؟ این فتوس به هواء علاما فعلتوم نادمی این منشاء عدم وصول به بیاته. نقطش اینه چون شما به واقع نرسیدین به... مثلا این آقا گفت امروز نریم بازار که مثلا بریم بازار که خیلی مفید رفتیم بازار خیلی هم مضر بود ما در مخالفت واقع واقع میشیم یعنی دو نکته رو میشه در نظر گرفتن در اصولی یه دفعه بره دنبال ال مجهل و جن... دقت کنه یه دفعه بره دنبال نادم بودن و نبودن وقتی گفت تصوه و علا ما فعلتم نادمی معناش اینه که این حالات ادراکی شما رو نگاه نکرده واقع رو نگاه کرده بقید که در قانون گذاری هستم در امور اعتباری یک نکته خیلی مهم اینه در امور اعتباری همیشه باید نگاه که زاویه دید چیه اعتباری طبیعتش اینه یه دفعه میخواد ناظره به اینه که کجا جهل کجا علمه این این بحثه یه دنبال اینه کجا واقع هست و واقع نیست واقع کار <تصف> به این رو جهل نداره فتوس بهو علاما فعلتم نادمی این معنی میشه که نظر رو واقعه کاری به تنزیل جهل و علم نداره نظرش به واقع اگر نظر به واقع شد خب تو خبر آدرم اونسان به واقع نمیازید چه فهم کنید؟ دقیقا نکته چیه؟ اگر شما بخواییم تنزیل و حکومت رو به لحاظ علم و جهر درست اما چون بعدش داره فتوسفیه و علامه فعلتم نادمی نکتهش اینه که این جهر منشه اینست که شما نادم بشین این نادم یعنی چی؟ یعنی خلاف واقع اگر صحبت خلاف واقعی شد تو آدل هم چه فهم میکنه یعنی به عبار از این اخرا شما حکومت رو وقتی میتونید درست بکنید که بگیم معیار کلام و علم و جهل و از کل مرهانانی یه حجیت به اصطلاح امارات غیر علمی حجیت اماره معناش تطیم میکشف کشف شما رو تام میکنه اشاره نمیتونه علم و نمیشه عقب تو از دیگه اینکه شما اصلا به واقع مکلف نیستین به علم جو مکلف. تو چه جور میشه این کار میشد؟ یعنی شورای بیاد بگه من احکامی قرار دادم هزار تا خوب. لكن چون شما میخواین به این راه های متعارف برسید ممکنه به صد تاش درازین، به 20 تاش درازین. به همونی که همون راهی که گفته اون میشه به حکم من، ولی حکم من نیست. اون انقلاب نیست، انقلاب پیدا میکنه تکلیف شما از واقع به معده هماره میشه امکان داره خوندیم هر های خود های خودیم نمیشه البته ایشون شد نه محال نیست میشه امکان داره ادهیم از هرنسانت قایل نداره مشکل قانونی نداره ما کجا هستیم الان مقام استزها و اثباتی او دقت رو کنیم مشکل نداره بگیش شما وزیفتون از واقع منقلل شد به معده اماره چه شد داره. وظیفه واقعی داشته هم زراره گفته هر بزر رو انجام دارید. وظیفه انقلاب وظیفه شد. این اشکال ندارید مشکل ندارید. آیا خویی کردن درست طبق قاعده چیزی که شعنش طریقیت و صرفه وزیفه رو عوض نمیکنه. به طبق همینه. لكن اشکال نداره ممکن است بگه که طبق معدده اماره عمل بکن این حکم واقعی توست. ولو مخالف واقع بس. ما الان اینجا صحبتمون چیه؟ صحبتنون سر مقام اثباته تو مقام اثبات نکته اینه که شاره آمده گفته خبر آدر یعنی علم خیلی اگر نکتهش این باشه سلم اما وقتی میگه فتوس به علاما علامه فعلتون نادمی معلومش شاره خیلی رو علم و نداره رو واقع تحکید داره نادمی واقع اگر واقعا شد تو خبر ادلما فهمید. پس تو به واقع حالا چیزی واقعا ایشون هم همین طرف انجام دادن و فیه مردم آقای خویی فهمیدن درسته ناضم معنی خلاب واقع. لکن این چون نادم بعد از جهل آمده و بقول سیره سیری هست سیره اغلایی است که اگر انسان در مخالفت واقع واقع شد و خلاف واقع انجام داد لیکن روی حجت بود روی دلیل بود روی برهان بود روی مثلا اماره بود این دیگه او را نازم حساب نمی کنن پس میره رو بحث روی علم و این که فتوس و علام و فعلتم نادمی، این به درد نمیخوره. پس پس بنابراین این اشکالی که شما کردید این است بر این که نادم مطلقا بگیم بده بلو انبینته این روشن نیست و خصوصا که تصروح و علامه فعالتون تفریعی شده به جهالت که انما مراد این است که شما اگر مخالفت واقعی کردین با جهل اونجا ندامت واقعی است اما اگر مخالفت واقعی کردین و با جهل نبود با این بود اونجا انسان نادم نیست میگه من انجام بودن حالا این اشتباه رفته راه اشتباه رفته من وظیفه انجام بزن پس این تصبح و علا ما فعلتم نادمین هم نمیتونه مانع بشه یک مشکل دیگری که حالا وقت تمام شده با دیگه چون طولانیه از این صفحه 193 اشکال مرحوم آغازی ها رو میکنن. ایشون متعرضه میخونن به تریه مناله که شبون اشکالش از مرحوم آزی که در اینجا حکومت معنا نداره، باید تخصیص باشه نه حکومت این یک نوع تخصیصه وقت مرحوم آقای خویی سعی کردن مقالا خودشون نوچنان ملخص اشکال ذکر و بعض آزم ولی انصاف انه او اون علمی اون دقیق عبورش کردن اون ام امکان غیر تامه بعد بر او اعتراض هم کردن دیگه اون خیلی یه ذره وقتم بوده بخوام مطرح بشم هی کلام ناقص میشه ان جلسه و صلی الله محمد و آلیه